بسم الله الرحمن الرحیم در مباحث قبلی کتاب سراجی بحث عصبات بود سنوی عتبه رو خوندیم البته یک نوع عتبه دیگه وجود دارد که مولا هست است کننده ولی از آن جایی که در دنیای امروز و در منطقه ما کاربردی ندارد هم بحثش برای طلبه مشکل هست و همین که کاربوردی ندارد لذا فقط اشاره ای کردیم که عصبه چارمی وجود دارد که نسبی نیست و سببیست همون آزاد کننده هست اما بحث امروزمون باب الحجب باب حجب حجب در لغت به معنی معنی و داشتن هست و در استلاح شخصی از ورسه ها به دلیل وجود شخصی دیگر از ورسه ها یا سحنیش کم شود یا کلن سهم نبرد اگر سهم کم شود بهش میگن حجب نقصان و اگر کامل سهم نبرد بهش میگن حجب حیرمان اون شخصی که سبب میشه شخصی دیگر ارث نبرد در اصطلاح بهش میگن حاجبه و شخصی که سهمیش یا کم شده یا به شکل کلی سهم گیرش نمیاد بهش میگند محجوب حاجب و محجوب با مثالی اصطلاحات رو توضیح میدیم شخصی فوت میکند مادری دارد به اضافه یک برادر یک برادر اینجا سهمیه مادر یک سفم هست باقی مانده رو میبرد برادرش حالا اگر در همین مثال شخص میت پسری هم داشته باشد میت پسر داشته باشد اینجا سهمیه مادر می شود یک شیشم ولی اگر پسر نمی بود یک سوم می برد اینجا میگیم این پسر حاجب هست سهمیش مادر رو محجوب حجب نقصان کرد مادر از یک سیوم یک شیشم حالا میبرد. برادرش اصلا نمی برد محجوب حیرمان هست پس اگر شخصی فوت کرد یک برادر داشت یک پسر داشت به اضافه مادر مادر یک شیشم می برد یک سفم نمی برد حجب نقصان هست برادرش حجب حیرمان هست اصلا نمی برد به خاطر وجود پسر میت به این پسر میگند حاجب به اون دوتا میگند محجوب حالا حجب چه نقصان باشد چه فرماند. حالا متن رو شروع میکنیم الحجب على نوعین. حجب بر دو نوع است. حجب نقصان یک حجب نقصان و هو حجب ان سهم الى و حجب نقصان حجب از سهمی به سهمی دیگر. یعنی شخص دو سهمی برایش مشخص شده است. مثلا یک دهم و یک چهارم به که یک دوم ببرد یک چهارم میبرد معنیم که شخصی فوت کرده است شوهری دارد به اضافه پسر اینجا شوهر یک چهارم میبرد به خاطر وجود پسر اگر این پسر نمیبود یک دوم میبرد شوهر این حجبه نقصان هست و هو حجب سهمن الاس سهمن حجب سهمی به سهم دیگر سهمی کمتر و ذالکه نفر و این حجم نقصان در ویروس برای پنج نفر پیش میاد. ل شوهر و همسر شوهر از یک دوم به یک چهارم حجم میشه همسر هم از یک چهارم به یک هشتگ و الام مادر مادر سهمیش از یک سوم به یک شیشم و بنت الابن بنت ابن از یک دوم به یک شیشم قبلا ها در بحث زوال فروزی اینا توضیح داده شده اند و الاخت و لعب پدری از یک دوم به یک شیشم و قد مر بیانه بیان اینا البته رد شد پس حجب نقصان همین هست که شخص دو سهمیه برایش تعیین هست در شریعت به خاطر میراسبری دیگر سهم کمتری رو میکرد و حجب و حیرمان دومین نوع حجب حجب حیرمان هست یعنی شخص کامل محروم میشه سهمیه ای نمیبرد افرادی که افراد در این رابطه به دو گروه میراست بران بردنوان و الورثتو فیه فریقان ورثه ها در رابطه با حجب حیرمان دو فریق تخصیم میشن به دو گروه فریق لا يحجبون به حال البته گروهی که در هیچ حالی محجوب نمیشوند در هیچ حالی محجوب نمی محجب حرمان نمشان وهم ستة شش نفران الابل والاب والزوج شوهر والبنت دختر والام مادر والزوجة وهمسر ان شش نفر در هجحالي حجب حرمان نمشان حجب حرمان نمشان يعني به خاطر وجود میراس دیگر از ارث محروم نمی شود و فریق یریثون به حال و یحجبون به حال گروه دیگر در حالاتی عرص میبرند و در حالاتی محجوب میشود بستگی دارد که چه میراس برای در اون مسئله وجود داشته باشد و ها مبنیون علی اصلین و این بناء بر دو قاعده هست بر دو اصل یعنی این فریقی که در حالی ارث می‌برند و در حالی دیگر ارث نمی‌برند این بنا مبنی بر دو اصل و دو قاعده است احدهما یکی از اون دو قاعده هو ان كل من يدلي الى المیت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص هر شخصی که منتسب باشد به میت به واسطه شخصی دیگر مانند ابن الابن که به وسیله ابن به پدر بزرگش میشه لا یری مو... مع وجود ذلك شخص این شخص با وجود اون واسطه ارسنه میبره ابن الابن با وجود ابن ارث نمیبرند. با وجود پدرش از پدر بزرگش ارث نمیبرد. پس این یک قاعده، سوا اولاد الام، جز فرزندان مادر، یعنی برادران و خواهران مادری میت، با وجود این که مادر زنده باشد ارث میبرند. و انهم يرثون معها اولاد ام ارث میبرند با وجود مادر لنعدام استحقاقی ها جمیعت طرف به دلیل عدم مستحق بودن تمام ترک چون مادر از اون عصبه هایی نیست که اگر بعد از این که زوی الفروس سهمشون را ببرند تمام مال گیر مادر بیاد از اون عصبه نیست اینجا یک سوالی پیش میاد که صاحب دلیل و اون رو هم مطرح کرده است و اون این هست که خب مادر که استحقاق جمیع ترکه نیست به این خاطر اولاد اوم ارس میگرد پس مادر مادر هم بتواند ارس ببرد با این استدلال می فرماید که یک چون مادر عدم مستحق تمام ترک است دو درس در ارس بردن سبب ارس بردنشان یکی نباشد پدر و پدر بزرگ سبب ارس بردنشان یکیست همون و یا پدر بودن است. ابنو ابن ابن ابن بودن هست. مو ام الام همون مادر بودن هست. لذا میگه مادر مادر با وجود مادر ارث نمی برد به خاطر اینکه سبب ارثشون یکیست. اما اولاد الام سبب یکی نیست. بس در هر حال قاعده اول میگوید هر شخصی که به واسطه شخصی دیگر به میت وصل باشد با وجود اون واسط اون شخص ارث نمیبرد جز فرزندان مادر بعدا فلسفه اینو ذکر کرد که چرا و ثانی دومین قاعده در مورد ارس بردن و نبردن الاقرب و فالاقرب نزدیکترها ارث میبرند فالاقرب سپس نزدیکترهای بعدی یعنی اولویت بندی هست اونی که نزدیکتر هست ابتدا ارس میبرد اونی که ذره دوتر هست محروم میشود کما ذکرنا فی العصبات همانطور که در بحث عصبات اینو مفصل توضیح دادیم در باب ارث در قسمت اول کتاب گفتیم افرادی از عرص محرومند محجوب با محروم فرق کند محجوب اون است که به وجود میراث نزدیکتر از ارث محروم می شود ولی محروم اون است که به دلیل دیگر از ارث محروم نمیشه بلکه بدلیل موانع ارث که در ابتدای کتاب گفتیم از ارث محروم میشه پس فرق بین محروم و محجوب در ذهنمان باشد تا این مطلب رو ادامش رو بفهمیم والمحروم لا يحجب عندنا محروم در نزد ما احناف میفرماید حاجب نمیتواند باشد مثلا شخصی فوت میکند کشته می شود بواسطه پسرش این پسر محروم هست از عرض محروم هست که قاتل هست و قاتل از موانع عرض است. حالا این شخص کشته شده مادری دارد میگویم مادرش چقدر میبرد یک سوم ولی اگر این پسر قاتل نمیبود مادر اون موقع یک ششم میبرد یعنی مادر رو حجب نقصان میکرد ولی چون این پسر اینجا محروم هست دیگه نمیتونه حاجب قرار بیره والمحروم لا یحجبو اندنا محروم حاجب نیست در نزد ما و اند ابن مسعود رضی الله عنه یحجب حاجب نقصان در نزد ابن مسعود حاجب میشه البته حجب نقصان نه حاجب حعمان یعنی در همین مثالی که قبلا مثال زدم شخصی فوت کرده توسط پسرش کشته شده و یک همسر دارد اینجا همسرش در نزد ابن مسعود یک شیشم میبرد درست است که پسرش محروم هست ولی وجود این که محروم هست مادر رو از حجم نقصان کرده از یک سوم سهمیش رو ورده به یک شیشم که جمهور همون نظره قبلی رو دارد محروم معنى دكي كالكافر والقاتل والرقيق معنى دك كافر والقاتلو برده اينو از معنى ارس هستن و شخصي كي اين معنى رو داشته باشه محروم است اما وليحجوبو يحجب بالاتفاق ولي محجوب باتفاق علما حاجب قرار ميكده يعني اوني كي محجوب شده ارس نمي اما می تواند حاجب شود مثالی آورده خودش کل اثنین من الاخوة والاخوات مانند دو نفر از برادران یا خواهران یعنی شخصی فوت کرده دو برادر یا دو خواهر دارد فصاعدا یا بیشتر از دو برادر یا دو خواهر دارد من ای جهت کانا از هر سمتی که باشند. فانهما لا یرثانی مع العاب این خواهران و برادران اگر میت پدر داشته باشه ارث نمیبرند ولیکن یحجبان العم من الثلث الى السدس اما محجوب میکنند مادر را از یک سوم به یک شخصی فوت کرده یک پدر دارد یک مادر دارد و سه برادر میگوییم این اینجا سه برادر ارث نمیبرند چرا چون پدر میت وجود دارد اینا محجوب شدند پدر حجمشون است. اگر انسه برادر وجود نداشتن مادر یک سوم می برد، ولی چون انسه برادر هستن مادر یک شیشم می برد. پس با وجودی که برادران ارثی نمی برند، سهمیه مادر رو از یک سوم به یک شیشم بردند. این بود بحث حجم که بر اساس کتاب سراجی توضیح داده شد